فصل نهم مدتی طول کشید تا در خانه فردبایل گوشی را بردارند صدای بوق ممتد تلفن عصبیم کرده بود پیش خودم تصور می کردم که خانم فردبایل خوابیده است و با هر زنگ بیدار می شود و دوباره به خواب می رود و من از رنجی که گوشهایش می برد در عذاب بودم می خواستم گوشی را بگذارم ولی خودم را در وضعیتی استراری می دیدم و به خودم اجازه می دادم که بگذارم تلفن طور زنگ بزند. بیدار کردن خود فرد بویل برایم ناراحت کننده نبود این مردک مستحق خواب آرام نیست مرز معروف شدن دارد و شاید دائما دستش روی تلفن باشد که به مدیر کل وزارت خانه ها، سردبیر روزنامه ها، کمیته های مرکزی، اتحادیه ها و حزب تلفن کند یا جواب تلفنشان را بدهد ولی از زنش خوشم میآید وقتی او را برای اولین بار به جلسات گروه آورد، هنوز شاگرد مدرسه بود و توریان آنجا نشسته بود و با چشمان قشنگش بحث های مربوط به الهیات و جامعه شناسی را دنبار می کرد که برایم رنجاور بود. از ظاهرش پیدا بود که ترجیح می دهد به جای این جلسه به مجلس رقص یا سینما برود، جلسه در خانه زمرویل بود و او مرتب از من میپرسید شنیر گرمتان است و هر بار با وجود عرقی که از پیشانی و هایم میریخ میگفتم نه جناب اسخف عاقبت چون دیگر نمی‌توانستم آن مزخرفات را تحمل کنم به بالکن رفتم در واقع خود این دخترک بود که به این بحث بی سر و ته دامن زده بود آن شب درباره اهمیت و محدودیت های دهنشینی با هم بحث میکردند دخترک خارج از مازه گفت بعضی از نوشته بن به زیباست فرد بایل که همه دخترک را نامزد او میدانستند سرخ شد و کینکل یکی از آن نگاه های معروفش را به او انداخت و گفت چی؟ هنوز این دخترک را اصلاح نکرده ای؟ آن وقت خودش دست به کار شد و شروع به اصلاح دخترک کرد و چنان او را با رنده فرهنگ مسیحی تراشید که از دخترک دوست داشتنی چیزی باقی نماند پوشالها توی هوا می و من از فرد بویل بزدل عصبانی بودم که به خاطر عهدی که با کینکل داشت از دخترک بینوا دفاع نمی کرد. درست نمیدانم چپ بود یا راست در هر صورت آنها با هم ختمشی مشترکی داشتند و کینکل وظیفه اخلاقی خودش می که زن آینده فرد بویل را اصلاح کند زومه ویلت هم با آن که ختمشی مخالف آنده داشت ساکت نشسته بود درست نمیدانم ویلد چپ است یا راست اگر فرد بویل و کینکل چپ باشند ویلد راست است یا عکس. رنگ ماری هم کمی پریده بود معلومات آدم ها روی او تأثیر شگرفی دارد و من تا آخر هم نتوانستم این موضوع را از سرش بیاندازم معلومات وسیع کینکل بر زن آینده فرد بویل هم تأثیر گذاشته بود و دخترک با دهان باز به حرفهای بزرگی که کینکل برای اصلاحش میزد گوش میداد کلماتی از آبا کلیسا گرفته تا برشت مانند طوفان فرو می ریخت و وقتی من شاداب از بارکن برگشتم آنها کوفته و بی حال نشسته بودند و شراب می نوشیدند و تمام اینها فقط به این خاطر بود که تفلک بینوا گفته بود بعضی از نوشته های بن زیباست حالا او که 22 سالش هم تمام نشده است دو بچه از فرد بویل دارد وقتی تلفن زنگ می به این فکر بودم که او در یک جای خانه مشغول دست و پنج نرم کردن با شیشه شیر، قوطی پودر، کنهی بچه و انواع کرم است. سردر گم و بیچاره و به یاد انبوه رخت های نشسته بچه و ظرف های کثیف و چرب توی آشپزخانه افتادم. یک بار که از بحث های بی سرته یکی از گرد همایی ها و سلم سر آمده بود به او برای برشته کردن نان و درست کردن ساندویچ و قهوه کمک کرده بودم. کارهایی که از شرکت در بعضی بحث ها و گفتگوها که نتیجه جز تلف کردن وقت ندارد خوشایندتر است صدای بریده باریده گفت بله بفرمایید و من با شنیدن این صدا دیدم که آشپزخانه، حمام و اتاق خواب از همیشه کسیفتر و نامرتبتر است این بار بوی چیزی را نمیشنیدم فقط میتوانستم حدس بزنم که سیگاری در دست دارد گفتم من شنیرم و منتظر بودم مثل قبل کلمه حاک از خوشحالی به زبان آ شما در بان هستید خیلی خوشحالم یا چیزی شبیه به آن ولی او نمیدانست چه بگوید و ساکت ماند بعد با صدایی ضعیف گفت: «آه خوشحالم آه خوشحالم و من نمیدانستم چه جواب بدهم آن وقتها می گفتفتکی مییید برای من نمایش بدهید؟ ولی حرفی از آن نزد به خاطر او ناراحت شدم نه به خاطر خودم برای من یعصاور ولی برای او ناراحت کننده بود بالاخره با زحمت گفتم نامه ها نامه هایی که برای ماری به آدرس شما فرستاده ام گفت اینجا هستند آنها رو باز نکرده پس فرستاده است. گفتم به چه آدرسی پس فرستاده؟ گفت نمیدانم شوهرم آنها را پس فرستاده گفتم شما باید روی پاکت هایی که برگشتند آدرس گیرنده را دیده باشید گفت مرا می کنید؟ گفتم آه به هیچ وجه فقط فکر کنم حق دارم بدانم چه بر سر نامایی که نوشتم آمده است گفت نامایی که بدون اینکه از با پرسیده باشید به با آدرس ما فرستاده گفتم خانم فرد بایل عزیز خواهش میکنم کمی انسانی تر فکر کنید او بی حال ولی طوری که شنیده می شود خندید اما حرفی نزد گفتم مقصودم این است که ای وجود دارد که انسان‌ها میتوانند با وجود داشتن ایدولوژی های متفاوت انسانی رفتار کنند گفت میخوایید بگویید که تا به حال رفتارم غیر انسانی بوده است؟ گفتم بله باز خندید بی حال ولی طوری که شنیده میشد اقبت گفت از این جریان خیلی ناراحت هستم ولی کار دیگری از دستم ساخته نیست شما به طرز وحشتناکی امید همه ما را به یعص بدل کردید پرسیدم به عنوان دلغک؟ گفت از هر جهت. گفتم گویا شوهرتان خانه نیست؟ گفت. نه، چند روز دیگر برمی گردد برای نوتخای انتخاباتی به آیفل رفته است گفتم چی؟ این حرف برایم واقعا تازهی داشت برای حزب دموکرات مسیحی که نرفته با لحنی که آشکارا به من فهمان دلش می گوشی را بگذارد گفت مگر عیبی دارد؟ گفتم باشد، اگر زحمتی برایتان نیست خواهش می کنم نامه ها را به اینجا بفرستید گفت به کجا؟ گفتم به آدرس من در شهر بن پرسید شما در بن هستید و به نظرم آمد که جمله خدا به دور را در گلویش خفه کرد گفتم خدا نگهدار از این همه انسانیت شما متشکرم از اینکه اینطور با او حرف زدم ناراحت شدم ولی کار دیگری نمی توانستم بکنم تحملم تمام شده بود به آشپزخانه رفتم بطری کنیاک را از یخچال بیرون آوردم و سر کشیدم فایده نداشت یک جارهه دیگر باز هم بیفایده بود. از خانم فردبایل بیشتر از این توقع داشتم. فکر می کردم خطابه درازی در باره زندگی زناشویی سر خواهد داد و مرا به خاطر رفتارم با ماری سرزنش خواهد کرد. او میتوانست به طرزی دوست داشتنی بر عقیده خود پافشاری کند. وقتی در بون بودم و به او تلفن میکردم با شوخی دعوتم می کرد که در کارهای آشپزخانه و اتاق بچه ها به او کمک کنم. باید واقعا امیدش را به یأس مبدل کرده باشم. شاید هم دوباره آبستم بود و بیواصله جرأت این که دوباره به او تلفن کنم و از او در بیاورم که چه خبر است، نداشتم. او همیشه نسبت به من مهربان بود. تنها دلیلی که می توانستم برای رفتارش پیدا کنم این بود که فرد بویل به او دستور عکید داده باشد که با من اینطور رفتار کند. بارها دیده بودم که زنها در مقابل شوهرانشان مطیع محضند. خانم فرد بوئل جوانتر از آن بود که بفهمد رفتار سردش تا چه حد مرا رنجانده است نمی توانستم از او توقع داشته باشم که بفهمد فرد بوئل شاید یاوهگویی بود که به هر قیمتی شده می خواست ترقی کند و اگر در این راه مادر بزرگش هم مانعش می شد به او رحم نمی کرد مطمئنن فرد بوئل به او گفته است دور شنیه را خط بکش و او هم خیلی ساده دور من را خط کشیده است. او بنده فرد بویل است. تا وقتی که فرد بایل عقیده داشت من به درد میخورم او هم با پیرووی از طبیعتش نسبت به من مهربان بود و حالا باید برخلاف طبیعتش با من بدجنسی کند. شاید هم من در حق آنها بدی کرده بودم و هر دوی آنها از وجدانشان پیروی می کردند. اگر ماری با تصبح نر کرده باشد برقرار کردن ارتباط بین من و ماری گناه است. ولی اینکه تسوپنر در اتحادیه شخص اول بود و میتوانست به فرد بوئل نفعی برساند برای وجدانشان مشکلی به وجود نمیآورد. این حق طبیعی آنها بود که فقط زمانی رفتاری خوب داشته باشند که به نفعشان باشد. از این حرکت فرد بوئل کمتر از رفتار زنش وحشت میکردم. به او هیچ وقت امیدی نداشتم و این واقعیت که او به سفری انتخاباتی آن هم به نفع حزب دموکرات مسیحی رفته بود متعجب نبودم. بطری کنیاک را توی یخچال گذاشتم بهترین بود که پشت سر هم به همه ی تلفن میکردم تا دست جمعی به آزار و عذیت من بپردازند خوشی و سر سرحال شده بودم و وقتی از آشپزخانه به اتاق آمدن دیگر پایم نمی لنگید. حتی جارختی و در انبار توی راه رو هم مسی رنگ بود فکر نمیکردم تلفن کردم به کینکل فایده ای داشته باشد با وجود این شمارش را گرفتم او همیشه خودش را طرفتار بی چون و چرای هنر من میدانست و کسی که با دلغک ها آشنا باشد میداند که حتی کوچکترین تعریف و تمجید یک کارگر صحنه هم باعث شادی غرور ما می شود دلم میخواست آرامش شبانگاهی مجلس مسیح کینکل را به هم بزنم به این فکر بودم که محل اقامت ماری را از او در بیاورم تینکل سرکرده گروه بود، الهیات خانده بود ولی به خاطر یک زن زیبا آن را نیمه کار رها کرده و بعدها حقوق خانده بود هفت تا بچه داشت و به عنوان یکی از کاردانترین سیاستمداران امور اجتماعی ما معروف بود شاید واقعا نمیتور بود، من توانستم قضاوت کنم قبل از اینکه او را ببینم، ماری جزوهی که او درباره راهی به سوی نظم جدید نوشته بود به من داد پس از خواندن آن که خوشم هم آمد، او را مردی بلندقامت و زریف و بور تصور می کردم و وقتی او را برای اولین بار دیدم مردی بود با کوتاه چاق و موهای پرپشت و سیاه و به قول خودش سرشار از قدرت. نمی توانستم باور کنم این همان کسی است که آن را نوشته است. شاید اینکه او طور دیگری بود و شکل ظاهریش با شکلی که در تصورم از او ساخته بودم جور در نمیامد من را به قضاوت نادرست درباره او کشاند. هر وقت ماری در حضور پدرش شروع به تعریف از کینکل میکرد، پدرش درباره معجون کینکل حرف میزد که اجزای تشکیل دندش مارکس به اضافه گواردینی یا بلو آ به اضافه تولستوی بودند. وقتی برای اولین بار به خانه کینکل دعوت شدیم، از همان ابتدا افتضاح شروع شد. ما زودتر از ساعت موعود وارد شدیم و بچه های کینکل با صدای جیغ مشغول جنگ و دعوا بودند که کدام یک باید میز شام را جمع کند. کینکل در حالی که هنوز مشغول جویدن بود با روی گشاده وارد شد و سعی کرد با خنده ناراحتیش را از زود آمدن ما پنهان کند. زومرویلت هم آمد. چیزی نمی جوید ولی دستهایش را به هم میمالید و لبخندی گشاد به لب داشت. بچه های کینکل چنان جنجالی در پشت صحنه انداخته بودند که هیچ تناسبی با خنده کینکل و قیافه زومرویلد نداشت. از پشت درهای بسته صدای سیلی که صدای وحشیانه ایست شنیده شد و من فهمیدم که دعوا شدیدتر از قبل ادامه دارد. در کنار ماری نشسته بودم و جنجال پشت صحنه تعادلم را بر هم زده بود و آتش به آتش سیگار میکشیدم. در این حال زومرویلد با همان لبخنده گشاد و بخشاینده با ماری صحبت میکرد. ما برای اولین بار پس از فرارمان دوباره به بن آمده بودیم. ماری از فرت و همچنین احساس احترام و غرور رنگش پریده بود. درکش کش کردم برای ماری مهم بود که دوباره با کلیسا آشتی کند و زومرویلد نسبت به او با مهربانی رفتار میکرد. زومرویلد و کینکر کسانی بودند که ماری نسبت به آنها احترامی آمیخته به ترس داشت. ماری مرا به زومرویلد معرفی کرد و وقتی دوباره نشستیم زومرویلد گفت شما با شنیرهای معروف که با زغال سنگ سر و کار دارند نسبتی دارید؟ این سوال مرا شدت حسابانی کرد او دقیقا می که من با آنها نسبت دارم تقریبا هر بچه در بون می که ماری دورکوم با یکی از همان شنیرهایی که با زغال سنگ سر و کار دارند فرار کرده است درست چند روز قبل از امتحانات دیپلم که آن دختر کار خودش را برای آن آماده میکرد جوابش رو ندادم خندید و گفت با پدر بزرگتان گاهی به شکار میردم پدرتان رو هم گاهی در کلوب مردان میبینم با هم اسکات بازی میکنیم این حرف او هم مرا ناراحت کرد به نظر من او آن احمق نبود که خیال کند میتواند با مزخرفات مربوط به شکار و کلوب مردان مرا مسهور کنند و اینطور هم به نظر نمی آمد که چون حرف دیگری پیدا نکرده این حرفها را میزند. زند بعد دهان باز کردم و گفتم شکار؟ من همیشه تصور می کردم شکار برای روحانیون کاتولیک مجاز نیست سکوت ناراحت کننده حکم فرما شد ماری سرخ شد کیمکل پریشان به این طرف و آن طرف اتاق میرفت و دنبال در بازکن میگشت زنش که تازه وارد اتاق شده بود بادامهای بوداده را توی بشخابی میریخت که پر از زیتون بود حتی زومرویلد سرخ شد سرخی به او آمد صورتش به اندازه کافی سرخ بود آهسته ولی کمی ناراحت گفت به عنوان یک پروتستان آدم مطلعی هستید گفتم من پروتستان نیستم ولی به چیزهایی که ماری علاقمند است علاقه دارم در حالی که کینکل توی گیلاس ها شراب میریخت زومرویلد گفت آقای شنیر مقرراتی وجود دارد و استثناهایی من از خانوادهی هستم که شغل سرجنگلبانی در آن موروسی است اگر میگفت شغل جنگلبانی هم من همان سرجنگلبانی را از آن میفهمیدم این کلامی سر مرا دوباره ناراحت کرد ولی حرفی نزدم و تنها نگاهی به او انداختم بعد؟ صحبت با نگاه میان آنها شروع شد خانم کینکل با نگاه به زومرویل گفت کاری به کارش نداشته باشید هنوز خیلی جوان است. و زومرویل با نگاه جواب داد بله جوان و بیادب و کینکل وقتی ته بطری شراب را برای میریخ با نگاه به من گفت خدای من هنوز چقدر جوان هستید و در همان حال به ماری و صدای بلند گفت حال پدرتان چطور است؟ هنوز همان پیرمرد غبراغ سابق است؟ ماری بی چنان رنگش پرید و پریشان شد که فقط توانست با سر اشارهای بکند زومرویلد گفت اگر شهر قدیمی و پرهیزگار ما آقای دورکم را نداشت چه میشد؟ این حرف زومرویلد باز هم مرا خشمگین کرد دورکم پیر برایم تعریف کرده بود که زومرویلد بارها سعی کرده بچه های کاتولیک را که از او مداد و آب نبات از رفتن به دکانش معن کند گفتم بدون آقای دورکم شهر قدیمی و پرهیزگار ما از این هم کسیفتر میشد. چون دست کم او شیاد نیست کینکل نگاه متعجبی به من انداخت گیلاسش را بلند کرد و گفت آقای اشنیر از شما خیلی متشکرم شما به من کمک کردید که به سلامتی کسی بنوشم به سلامتی مارتین دورکم. گفتم بله با کمال میل به سلامتی او مینوشم. خانم کینکل دوباره با نگاه به شوهرش گفت او نه تنها جوان و بیعدب است بلکه بیشرم نیز هست. من هنوز هم نفهمیدم چرا کینکل همیشه این شب را زیباترین شب با شما می نامد؟ چندی نگذشت که فرد بویل نامزدش مونیکا زیلوز و شخصی به نام ون سویرن وارد شدند. قبل از ورود آنها درباره ونسورن گفته بودند که هرچند تازه کاتولیک شده ولی به حزب سوسیال دموکرات نزدیک است و این واسه چون مسئله ای که زمین و آسمان را بلرزاند برای آنها مهیجترین موضوع آن شب بود. فرد بویل را اولین بار بود که میدیدم. آنچه در آن شب اتفاق افتاد در تمام دیدارهای بعد هم تکرار شد. از نظر آنها من با وجود تمام احوالاتم جالب و دوست داشتنی آمدم و از نظر من آنها با تمام احوالاتشان خسته کننده و نامهربان به استثنای نامزد فرد بویل مونیکا زیلوز در مورد ون سورن هم احساس خاصی نداشتم او آدم خسته کننده بود که مصمم بود بر کاتولیک و عضو حزب سوسیال دموکرات بودنش تاکید کند دائما لبخند میزد و با همه خوشرویی میکرد. این طور به نظر میآمد که چشمان از حدق بیرون‌زده‌اش دائما میگویند مرا ببینید این منم با این حال مرد بدی به نظر نمیرسید. فرد بویل نسبت به من مهربان بود نزدیک به 3 روز ساعت درباره بکت و یونسکو برایم حرف زد و آنها را طوری با هم قاطی می‌کرد که فهمیدم آنها را با هم خوانده است وقتی از روی نادانی گفتم آثار بکت را خواندم و حرفایی که او می‌زند برایم آشناست و گویا آنها را جای خوانده باشم صورت صاف و قشنگ بود دهان زیاد از حد گشادش از هم باز شد و از تمام صورتش خیرخویی و محبت تراوش کرد کینکل او را با تحسین نگاه میکرد و زمروید به اطرافش نگاه میکرد و چشمانش میگفتند چه خیال کردید ما کاتولیکا از پشت کوه نیامده ایم؟ تمام این جریانات قبل از دعا اتفاق افتاد. این خانم کینکل بود که گفت ادیلو به نظرم دعا را شروع کنیم فکر نکنم هریبرت امروز بیاید. همه چشم ها به سمت ماری برگشت و خیلی سریع همه به طرف دیگری نگاه کردند. من آن زمان نفهمیدم دلیل سکوت ناراحت ای که هوک فرما شد چیست در هانوفر توی هتل بود که فهمیدم اسم کوچک تسوپفنر هریبرت است بعد از دعا وقتی مشغول صحبت درباره موضوع اصلی آن شب بودند تسوپفنر آمد از اینکه ماری قبل از اینکه او با دیگران سلام و احوال پرسی کند به طرفش رفت خوشم آمد ماری به او خیره شد و شانش را بالا انداخت تسوپفنر پهلوی من نشست بعد زومر داستان نویسنده کاتولیکی را حکایت کرد که مدتها با زنی که از شوهرش طلاق گرفته بود زندگی می‌کرد و وقتی داشت به آن زن عروسی میکرد کشیش عالی مقامی به او گفت بزوید سه عزیز ازدواج دیگر برای چه بود نمی‌توانستید همانطور با هم زندگی کنید همه به این داستان خندیدند به خصوص خانم کینکل که خنده‌اش بیشرمانه بود تنها کسی که نخندید تسبفنر بود و من من خاطر از او خوشم آمد ماری هم نخندید بدون شک زومرویلد این داستان را برای این تعریف کرد تا به من نشان دهد کلیسای کاتولیک تا چه حد بزرگ گرم، رعوف، شوخ و رنگارنگ است ولی این فکر را نمی کرد که من و ماری هم بدون اینکه که ازدواج کرده باشیم زندگی می کنیم. من هم داستان کارگری به نام فرلینگن را برای آنها گفتم که در نزدیکی ما با زنی که طلاق گرفته بود و تا بچه داشت زندگی می کرد روزی کشیشی پیش فرلینگن آمد و با قیافه جدی و لحنی تهدیدآمیز از او خواست که به این عمل خلاف اخلاق خاتمه بدهد. فرلینگن هم که مرد پریزگاری بود واقعا زن زیبا و بچه هایش را از خانه بیرون کرد. همچنین برای آنها گفتم که چطور بعدها زنک برای سیر کردن شکم بچه هایش به فحشا و فرلینگن از غصه دوری او به میخارگی افتاد. دوباره همون سکوت همیشگی حکم فرما شد. سکوتی که هر وقت من حرفی می زدم سر سرکلش پیدا میشد. تنها زومرویلد خندید و گفت: ولی آقای اشنیر فکر نمیکنم قصد مقایسه این دو داستان را داشته باشید گفتم چرا نمی شود آنها را به هم مقایسه کرد؟ با عصبانیت گفت: «اگر به زویت را می و میدانستید چه روح حساسی دارد و تنها نویسنده ای است که میتوان اصطلاح نویسنده مسیحی را دربارش بارش برد این حرف را نمیزدید من هم با حسابانیت گفتم مگر شما درجه ی حساسیت روح فرلینگه را میدانید و اینکه چه کارگر مسیحی نازنینی بود؟ او در حالی که سرش را تکان می‌داد، به من خیره شد و دست را به آسمان بلند کرد. پس از آن سکوتی برقرار شد که فقط صدای صرفه ی زیلفز در آن به گوش می رسید. اما جایی که فرد بایل باشد صاحب خانه نواید از قطع شدن رشته صحبت ترسی داشته باشد فردبایل بالا فاصله بحث مجلس را پیش کشید و بیش از یک ساعت و نیم درباره نسبی بودن فقر صحبت کرد و پس از آن بود که به کینکل مهلت داد که مثالش را درباره شخصی که با درآمد ماهیان بین 500 تا سه هزار مارک دوچار نکبت شده بود بگوید و تصبحفنر از من سیگار خواست تا بتواند صورتش را در پس پرده از دود بپوشاند موقعی که سوار قطار بودیم و به کلم برمیگشتیم حال هر دوی بود کرایه رفت و برگشت به بن را به زحمت تهیه کرده بودیم چون ماری دلش میخواست به هر قیمتی شده دعوت آنها را قبول کند از نظر جسمی هم ناراحت بودیم غذا کم خورده بودیم و مشروب زیاد زیادتر از آنچه عادت داشتیم فاصله ی میان بن و کلن تمام نشدنی بود و وقتی عاقبت به ایستگاه غرب كلن رسیدیم مجبور بودیم پیاده به خانه برویم چون پولی برای سوار شدن نداشتیم وقتی شماره کینکل را گرفتم بلافاصله صدایی از خود را جوانی جواب داد اینجا منزل آلفرد کینکل است گفتم من شنیر هستم می توانم با پدرتون صحبت کنم پرسید شنیر دانشجوی الهیات یا شنیر دلغک گفتم شنیر دلغک گفت آه شمایید امیدوارم زیاد ناراحت نشده باشید گفتم ناراحت از چه گفت چی مگر روزنامه را اید؟ گفتم کدام روزنامه را گفت روزنامه صدای بان پرسیدم درباره هم نوشته؟ گفت آه بیشتر شبیه آگهی ختم است. می‌خواهید آن را بیاورم و برایتان بخوانم؟ گفتم نه متشکرم. در ته صدای این پسر آثار سادیسم را اسم کردم جواب داد ولی بهتر است بخوانید و از آن عبرت بگیرید. خدای من. خودش را موظف به تعلیم من هم میدانست پرسیدم مقاله را چه کسی نوشته؟ گفت شخصی به نام کاسترد که خبرنگار روزنامه در نایه‌ی رور است بسیار عالی نوشته ولی کمی هم بدجنسی به خرج داده گفتم چه می شود کرد او یک مسیحی است پرسید مگر شما نیستید گفتم نه من نیستم پدرتان خانه نیست گفت چرا ولی گفته مزاحمش نشویم ولی به خاطر شما مزاحمش می‌شوم اولین باری بود که سادیسم برایم فایده داشت گفتم متشکرم صدای گذاشتن گوشی روی میز و صدای پایش را که به سمت اتاق میرفت شنیدن صدای فش, فش و نجوا به گوش میرسید گویی اعضای خانواده مارها به جان هم افتاده بودند دو مار نر و یک مار ماده برای من شنیدن صداها یا دیدن چیزهایی که نباید بشنوم و ببینم همیشه ناراحت کننده بوده است و این خاصیت اسرارآمیز شنیدن بو از پشت تلفن نه تنها باعث لذت و که همیشه برایم هم دردسرساز بوده است. در تمام خانه کینکل بوی آب گوشت می آمد. طوری شدید که انگار یک گاو را در خانه پختند. پشت سرن خطرناک به نظر می رسید طوری که آدم خیال می کرد الان است که پسر پدر را به قطر برساند یا مادر پسر را. به یاد لائوکون افتادم و اینکه این جنجال و حیاهو در خانه شخصی اتفاق میافتاد که به عنوان شخصیت تراز اول کلیسای کاتولیک آلمان شناخته شده بود. من حتی سر و صدای زد و خورد و آخ و اوخ و جملاتی مانند خوک وحشی و گند تحو آور را شنیدم و تمام اینها باعث خوشحالی هم شد همچنین به یاد کاسترت بینوا در بخوم افتادم که دیشب پای تلفن با رزالت تمام مقاله‌ای که درباره من نوشته بود را برای دیگران تعریف می کرد و صبح چون چونستگهار ناامیدی به در اتاق من پنجه می کشید و نقش برادر مسیحی انسان دوست را وازیم کرد آن سوی خط جنجال شدیدتر شده بود چنین آمد که کینکل با چنگ و دندان از خودش دفاع میکرد و نمیخواست پای تلفن بیاید من میتوانستم صداها و حرکات آنها را از انتهای اتاق به خوبی تشخیص دهم زن هم مانند شوهرش مخالف سرسخت صحبت کردن با من بود و پسرک به هیچ قیمتی حاضر نبود پای تلفن بیاید و به من بگوید اشتباه کرده و پدرش خانه نیست ناگهان هیاهو خوابید و سکوتی محز حکم فرما شد سکوتی که وقتی یک نفر در خون خودش میغلت غلطت حکم فرما می شود باور کنید سکوتی خونین بود بعد قدم های خسته به گوشم رسید و شنیدم یک نفر گوشی را برداشت پیش خودش حساب می کرد که من دیگر پای تلفن نیستم من دقیقا می دانستم که تلفن خانه کینکل کجاست درست پای مجسمه باروک مریم که کینکل آنها را همیشه چیزی بی ارزش معرفی میکند. بهتر بود گوشی را میگذاشتم دلم به حالش میسوخت برای او حتما وحشتناک بود که در این شرایط با من صحبت کند و من هم از این مکالمه امید پول یا مشورتی مشکل گشا نداشتم اگر صدایش گرفته بود ترحمم نسبت به او بیشتر میشد ولی صدای مثل همیشه خشن و بلند بود زمانی یک نفر صدای او را به صدای ترمپت دسته موسیقی ارتش تشبیه کرده بود صدایش را چون تو شنیدم آ سلام شنیر لطف کردید زنگ زدید گفتم سلام دکتر من در وضعیت ناراحت کننده ای هستم فکر کنم از کلمه دکتر رنجید دکترای او هم مانند پدرم دکترای افتخاری بود که به تازگی به او داده بودند گفت شنیر یعنی روابط ما ماطوررییس که شما را وادار کند مرا دکتر خطاب کنید گفتم من جدا نمیدانم روابطمان چگونه است؟ خندید قررش شاداب و سرزنده و به شیوه کاتولیکا سریح و بیپرده که با شادابی به سبک باروک تزین شده بود گفت در دوستیام نسبت به شما هیچ گونه تغییری پیدا نشده است برای من باور کردنش مشکل بود شاید به نظر او من تا حدی سقوط کرده بودم که دیگر ارزشی برای سقوط بیشترم قائل نبود گفت شما فقط یک بحران را تیمی میکنید چیزی غیر از نیست شما هنوز جوان هستید اراده به خرج بدهید اون و خواهید دید که چگونه موفق خواهید شد کلمه اراده تنینی چون آی آر ناین آنا داشت با ملایمت پرسیدم درباره چه صحبت می کنید؟ گفت درباره چه باید صحبت کنم؟ درباره هنرتان، درباره موفقیت در شغلتان صحبت می گفتم ولی مقصود من این نبود شما می دانید که من اصولا درباره هنر صحبت نمیکنم درباره موفقیت در شغلم که هرگز به خاطر ماری زنگ زدم دنبال ماری می گردم. صدایی از خودش بیرون داد که دقیقا تشخیص چیستیاش ممکن نبود. صدایی میان نحره حیوانات و آارغ بود جنجال پشت صحر هنوز ادامه داشت. شنیدم که کینکل گوشی را روی میز گذاشت و دوباره آن را برداشت صدایش ضعیفتر و گرفتهتر شده بود. سیگار برگی بر لب گذاشته بود گفت شنیر بگذارید گذاشته ها در گذشته بماند آنچه امروز متعلق به شماست هنر است پرسیدم گذشته اگر زن خودتان ناگهان شما را ترک میکرد و پیش دیگری میرفت چه میگفتید سکوت کرد سکوتش طوری بود که انگار میخواست بگوید کاش این کار را میکرد بعد سیگارش را زیر دندانش فشار داد و گفت او زن شما نبود و شما مثل من هفت بچه از نداشتید گفتم حجب او زن من نبود گفت اخ این هر جمعه از طلبی رومانتیک را بگذاری کنار واقبین باشید مثل یک مرد رفتار کنید گفتم خدایا چون خودم را مرد می دانم, جریان برایم تا این حد ناراحت کننده است و هفت بچه هم می توانند بیایند ماری تازه 25 سال دارد گفت من به کسی مرد میگویم که بتواند جلوی خودش را بگیرد گفتم این حرف به نظرم زیادی مسیحی است. گفت خداوندا حالا دیگر شما می‌خواهید معنای مسیحیت را به من بگویید؟ گفتم بله تا آنجا که من اطلاع دارم طبق اصول کاتولیکی زن و مرد موقع ازدواج باید دعای مخصوصی را بخوانند اینطور نیست؟ گفت همین طور است گفتم آن وقت اگر این دعا را نخوانند اگر ازدواجشان را صد بار هم در دفاتر رسمی و کلیسا ثبت کرده باشند مثل این است که ازدواج نکرده‌اند گفت گفتم گوش کنید دکتر اگر برایتان مانعی ندارد سیگار را از لبتان بردارید وقتی ملش ملوچ کنن با من حرف میزنید فکر میکنم موضوع بر سر خرید و فروش سهام است و این موضوع ناراحتم میکند گفت گوش کنید سیگار را از لبش برداشت یادتان باشد که عقاید شما مربوط به خودتان است اینطور که معلوم است دوشیز درکم طور دیگری فکر و بنا آن هم عمل میکند من فقط میتوانم بگویم عمل او درست است گفتم چرا یکی از شما های تحو آور به من نمیگوید او کجاست شماها او را از من پنهان میکنید گفت خودتون را مسخره مردم نکنید ما که در قرون وسطا زندگی نمیکنیم گفتم کاش در قرون وسطا زندگی میکردیم آن وقت مجاز بودم با او به همین شکل زندگی کنم و شما هم نمیتوانستید او را دچار عذاب وجدان کنید ولی نگران نباشید ماری دوباره پیش من برمیگردد کینکل گفت چنیر، اگر جای شما بودم اینقدر با اطمینان صحبت نمیکردم. این خیلی بعد است که شما فاقد حس در که مسائل ماور و طبیعی هستید. گفتم تا وقتی که ماری به فکر روح من بود و از خوب بود ولی شماها به او یاد دادید به فکر روح خودش باشد حالا کار به جای کشیده که من منی که شماها میگوید قدرت درک ماوراء طبیعه ندارم به فکر روح ماری افتادم اگر ماری با تصوبن رزدواج کرده باشد مرتکب گناه شده است از ماوراء طبیعی شما اینقدر میدانم که کاری که ماری میکند پشت پا زدن به زناشویی است زناست و زمر ویلده کشیش هم در اینجا نقشه دلال محبت را بازی میکند او توانست بخندد هرچند که خندش تهدیدآمیز نبود گفت وقتی آدم فکر میکند که هریبرت بالاترین مقام دنیایی و زومرویلد بالاترین مقام روحانی کلیسای کاتولیک آلمان هستند حرفهای شما مسخره به نظر می با عصبانیت گفتم و شما وجدان او هستید و می حق با من است. لحظه زیر مجسمه های بی مریم نفسی تازه کرد شما هنوز تا حد وحشتناک و حسادت جوان هستید. گفتم این حرفا رو بگذارید کنار دکتر نمیخواهد حسرت جوانی مرا بخورید فقط بدانید که اگر ماری پیش من برنگردد من جناب اسخف اعظم جذاب زومرویل را خواهم کشت من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم کینکل ساکت ماند و دوباره سیگارش را بر لب گذاشت گفتم میدانم که وجدانتان به تکپو افتاده. میدانم اگر تصففن را بکشم بیشتر خوشتان میآید او از شما دل خوشی ندارد شما هم او را زیادی دست راستی میدانید در حالی که اززمروید پشتیبان بزرگ شما در روم است به خصوص حالا که شما در روم به عنوان فردی چپگرا مشهور شده اید گفت: این حرفها رو کنار بگذارید شما حرف حسابتان چیست؟ گفتم کاتولیک مرا عصبانی میکنن چون انسانهایی بیوج خندان پرسید؟ و پروتستان ها؟ گفتم آنها با وجدانشان مرا مریض می کنند. در حالی که هنوز می خندید گفت خدا چه؟ چه؟ گفتم آنها هم مصله آدم را سر میبرند چون فقط درباره خدا حرف میزنند پرسید خب بگویید ببینم شما چه هستید؟ گفتم من یک دلغکم که در حال حاضر کارهایی که از دستم برمیآید بیشتر از یک دلغک است و یک موجود کاتولیک وجود دارد که به شدت به او نیاز دارم ماری ولی شماها او را از من گرفته اید گفت شنیر یا بنوگویید این مزخرفات که ما او را از شما گرفته ایم را از سرتان بیرون کنید ما در قرن بیستم زندگی میکنیم گفتم همینطور است اگر قرن سیزدهم بود من یک دلغک که دوست داشتنی یه بودم و حتی کاردینال ها هم کاری به این نداشتند که من با ماری ازدواج کرده هم یا نه ولی حالا در قرن بیستم هر کاتولیکی با وجدان فقیرش اسب به گریبان شده و میخواهد او را به خاطر یک تکه کاغذ احمقانه به کاری بیاندازد. جناب دکتر مطمئن باشید اگر در قرن سیزده هم زندگی کردید، شما را به خاطر مجسمه های مریم اتان از کلیسا بیرون میانداختن ما هر دو خوب میدانیم که شما این مجسمه ها را از کلیساهای در بایرن و تیرول دزدیدهاید و نیازی به یادآوری نیست که دو از جای متعلق به کلیسا امروز هم جنایتی بزرگ تلقی میشود گفت شنیر گوش بدهید من از اینکه شما وارد زندگی خصوصی من شده ای تعجب کنم. گفتم شما سالهاست هاست که در زندگی خصوصی من مداخله می کنید آن وقت اگر من اشاره کوچکی بکنم و شما را به حقایقی واقف کنم که ممکن است برایتان آیند باشد از کوره در میروید اگر دوباره پولی به دستم بیاید یک کارگاه خصوصی استخدام خواهم کرد تا کشف کند شما این مجسمه ها را از کجا آورده اید او دیگر نمی نمیخندید فقط سرفه میکرد و من حس کردم که او هنوز متوجه نشده که من جدی حرف میزنم گفتم کینکل. گوشی را بگذارید وگرنه از جزئیات کوچکی که انسان برای زنده ماندن به آن نیاز دارد صحبت میکنم برای شما و وجدانتان شب خوشی را آرزو میکنم ولی او هنوز متوجه جدی بودن رازی نشده بود برای همین خودم گوشی را گذاشتم